شمس قونی اجده همه جمادی الول 642 در شبی سرد مثل زمحریر در ایوان کاروانسرای شکرچی نشسته بودم به آشناییم با مولانا کمی مانده بود غرق تفکر بودم در برابر عظمت کائنات که آفریدگار آن را به هیئت خیش آفریده تا به هر سو که چرخیدیم او را جستجو کنیم و بیابیم باید قلبمان پر از شادی و عشق باشد اما فرزندان آدم کمتر سپاس میگذارند. از وقتی به قونیه آمده‌ام آدمهایی را شناختم حسن گدا سلیمان مست و گل کویر این آدمها ها که دیگران تحقیرشان میکنند و آزارشان میدهند دردی مشترک دارند. زن داشتن نفسی متفاوت. آنها به حاشیه رانده شده اند. عالمان برج آج نشین نمیبینندشان. دوست داشتم بدانم مولانا میان اش با آنها چطور است اگر مولانا هنوز با سقوط کرده های جامعه آشنا نشده باشد میخواهم در این راه کمکش کنم پلی باشم میان او و سقوط کرده ها شهر سرانجام به خواب رفت الان ساعتی است که حتی حیوانات شبرو میکوشند آرامش آن را به هم نزنند. گوش دادن به صدای خواب شهر هم اندوهی توصیف ناپذیر به بار می آورد هم شادی توصیف ناپذیر پشت درهای بسته چه حکایت هایی میگذرد اگر در زندگی راه دیگری برمی‌گزییدم آنگاه حکایتم چگونه می‌شد به این هم فکر می‌کنم اما می‌دانم که من این راه را انتخاب نکردم این راه مرا انتخاب کرده است درویشی به شهری می‌آید اهالی آن شهر که به ها اصلا اعتماد نمی‌کردند رو به درویش فریاد میزنند، شو، برو از اینجا. هیچ کداممان تو را نمی شناسیم. درویش با آرامش جواب می دهد. خودم که خودم را می شناسم. مهم همین است. باور کنید اگر آن طور دیگر بود، یعنی اگر شما مرا میشناخدید و من خودم را نمیشناختم، خیلی بدتر می شدد بگذار اهل قونیه مرا نشناسند چون من خودم را می شناسم همه چیز روبهه هست هر که نفسش را بشناسد او را شناخته است قاعده 7 زندگی اسباب با بازی پرزرق وورقی است که به امانت به ما سپدهاند بعضی ها اسباب بازی را آنقدر جدی میگیرند که به خاطرش میگیریند و پریشان می شوند. بعضی ها هم همین که اسباب بازی را به دست میگیرند چمی با آن بازی می کنند و بعد می و میاندازندش دور یا زیاده بهایش می دهیم یا بهایش را نمیدانیم از زیاد روی به پرهیز صوفی نه افراط می کند و نه تفرید صوفی همیشه میانه را برمیگزیند. فردا صبح من هم مثل همه به مسجد بزرگ میروم و به سخنان مولوی گوش می دهم ممکن است همانقدر که میگویند خبره باشد اما هرچه باشد عمق سخنان خطبا را با این میسنجند که شنوندههایش چه فهمیدند. آدم هنگام گوش دادن به موعظه آن چیزی را میشنود که دلش میخواهد بشنود. حالان که در اصل چرامت در حرف‌هایی است که به گوش خوش نمیآیند. به نظرم معزه های مولانا مانند باخچههای بیابانیست، زینت شده با گزنه و خار و وگوون. مهمانی که به آنجا وارد می شود گلهایی را که به نظرش خوب میرسند می‌چیند و به باقی گیاهان حتی نگاه هم نمی کند. بسیار اندکند کسانی که به گیاهان خاردار و به ظاهر خشن تمایل دارند حالانکه که در این عالم دوای بیشتر دردها از این گیاهان به دست میآید. آید. باقی عشق اینطور این طور نیست. اگر فقط خوشیها و راحتیها را جمع کنیم و دشواریها را رها کنیم میتوان این را عشق نامید؟ دوست داشتن زیبا و پس زدن زیشت آسان ترین کار است. مهم این است که بتوانی هم خوب را دوست داشته باشی هم بد را بدون این که بینشان فرق بگذاری مگر شکر کردن به خاطر چیزهای نیکو کاری دارد این را سکهای بلخ هم بلدند اگر استخوانشان بدهی خوشحال میشوند و به نشانه شکر دمشان را تکان میدهند. بدون شک انسان بیشتر از این از دستش برمی آید. گذر به فراسوی نیکوفت ممکن است. جایی دیگر هست. ساحتی دیگر که در آن همه صفات‌ها معنای خود را از دست می‌دهند. فردا مولوی را می‌بینم. ای مولانا سرور کلمه ها و حرف‌ها و عالم معنا ای سراف دنیا هنگام نگریستن به چهرم خواهی دید مرا ببین مرا ببین مرا